سیاست در خدمت فرهنگ اقتصاد در خدمت فرهنگ و خونر در خدمت فرهنگ برای فشار آوردن به فرهنگ داخلی ملت ما ما که اینجور در مواجهه با فشار عظیم تبلیغات جهانی قرار داریم چون میدونن که اگر فرهنگ رو عوض کردن دیگه مبارزه باقی نمیمونه در بعضی از اون دوره‌های قبل که حالا نمی‌خویم خیلی مشخص کنیم و اسپیاریم لکن چاره‌ای هم نیست انسان برای مقایسه مجبور بگه کار فرهنگی می‌خواستن بکنن مم. رفتن کاروانسرای های عباسی بین راه رو به عنوان کار فرنگی بنا کردن خوب ولی بله, کاروانسرای های عباسی چیز خوبی است آبادش کردنش هم اثر بااستی است اما این آیا کار اولویت دار فرنگی ما همینه فرنگی ما همینه مقصود ما از فرهنگ هرجمی فرهنگ یعنی فرهنگ انقلابی فرهنگ, فرهنگ, فرهنگ اسلامی یعنی ایجاد حرکت فرهنگی بر مبنای اسلام و بر مبنای ارزش‌های اسلامی و حرکت دادن جامعه به سمت اهداف اسلامی تقویت فرهنگ اسلامی و باور اسلامی و آداب اسلامی و اخلاق اسلامی و سنت‌های اسلامی فرهنگ اینه این جور نیستش که به هر شکلی ابزارهای فرنگی در کشور به وجود آمد ما خوشحال بشیم که بله فرهنگ پیشرفت کرده بله فرهنگ نه پیشرفت پیش دفت فرهنگ با تکیه روی فرهنگ به معنای فرهنگ انقلابی است فرهنگ اسلامی است